مصنوی معنوی مولوی برنامه 112 انکار اهل تن غذای روح را و لرزیدن ایشان بر غذای خسیص قسم او خاک است گردی گر میر کونی خاک چون نوشی چمار در میان چوب گوید کرم چوب مرکرا باشد چنین حلوای خوب کرم سرگین در میان آن هدست در جهان نقل نداند جز خبست مناجات ای خدای بینظیر ایثار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخن گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رحیقت می خورند آن سرخوشان چون به ما بوی رسانیدی از این سرمبند آن مشک را ای رب بدین از تو نوشند، ار زکورند، ار اناس بی در عطا یا مستقاس ای دعانا گفته از تو مستجاب داده دل را هر دم صد فتح باب چند حرف نقش کردی از رقوم سنگ ها از عشق آن شد همچموم نون ابرو ساد چشم و جیم گوش برنویشتی فتنه صد عقل و هوش زن حروفت شد خرد باری کریس نسخ میکن ای عدیب خوشنویس در خوره هر فکر بسته بر ادم دم بدم نقش خیال خوش رقم حرف های بر لوح خیال بر نوشته چشم و آرز خد و خال بر آدم باشم نه بر موجود ماست زان که معشوق ادم وافی تر است اقل را خان آن اشکال کرد تا دهت تدبیرها را زان نورد تمثیل لوح محفوظ و ادراک عقل هر کسی از آن لوح آنکه امر و قسمت و مقدور هر روزی وی است همچون ادراک جبرئیل علیه السلام هر روز از لوح اعظم. چون ملک از لوح محفوظ آن خرد، هر صبح درس هر روزه برد، برعدم تحریرها بین بی بنان و از سبادش حیرت سوداییان، هر کسی شد بر خیال ریش گاو گشته در سودای گنج کنج کا. از خیال گشته شخص پرشکو روی آورده به معدنهای کوه، و از خیال آندگر با جهد مر رونه حاده سوی دریا بهر دور، و آندگر بهر ترهب در کنشت و یکی اندر حریسی سوی کشت. از خیال آن رهزن رسته شده و از خیال این مرهم خسته شده. در پریخانی یکی دل کرده گم. بر نجوم آن دیگری بنهاده سم. این روشها مختلف بیند برون، زن خیالات ملون زندرون این در آن حیران شده کان بر چه است هر چشنده آن دگر را نافی است آن خیالات در نبد نامعتلف چون ز بیرون شد روش ها مختلف قبله جان را چو پنهان کرده اند هر کسی رو جانب آوردند. تمثیل روشهای مختلف و حمد های گوناگون به اختلاف تحریه متحریان در وقت نماز قبله را به وقت تاریکی و تحریه غواسان در قعر بحر. همچو قومی که تحری می کنند، برخیال قبله سوی میتنند، چونکه چون که کعبه رو نماید صبحگاه کشف گردد که که گم کرده است راه. یا چو غواسان زیر قعر آب، هر کسی چیز همی چیند، شتاب بر امید گوهر و در سمین توب را پر می کنند از آن و این چون برایند از تگ دریای ژرف کشف گردد صاحب در شگرف واندگر که برد مروارید خورد واندگر که سنگریزه و شبه برد ها کزا یبلوه ما به ساهره، ذات افتزاهن قاهره. همچنین هر قوم چون پروانگان گرد شمع پرزنان اندر جهان خیشتن بر آتش برمیزنند، گرد شمع خود توافه میکنند بر امید آتش موسای بخت کزلهیبش بش سابستر گردد درخت فضل آن آتش شنیده هر رمه هر شرر را آن گمان برده همه چون برایت سابه دم نور خلود وانماید هر یکی چه بود هر که را پرسوخت زان شمع زفر بدهدش آن شمع خوش هشتاد پر جوق پروانی دودیده دوخته مانده زیر شمع بد پرسوخته میتپد اندر پشیمانی و سوز میکند آه از هوای چشم دوز شمع او گوید که چون من سوختم کهی تو را برهانم از سوز و ستم شمع او گریان که من سر چون کنم مر غیر را افروخته تفسیر یا حسرتن علال عباد او همه گوید که از اشکال تو غره گشتم دیر دیدم حال تو شم مرده باده رفته دل رو با غطه خورد از ننگ کشبینی ما زلت و خسرن مغرما، تشتکی شکوه الله العما، حبزا ارواح و اخوان سقات، مسلمات، مؤمنات، قانتات، هرکس روی بسوی بردند، وان عزیزان رو به بیسو کردند. هر کبوتر می پرد در مذهبه و این کبوتر جانبه به جانبی. ما نه مرغان هوا، نه خانگی، دانه ما دانه بدانگی. زان فراخ آمد چون این روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما، سبب آنکه فرجی را نام فرجی نهادند از اول صوفی بدرید جبه در هرج پیشش آمد بعد بدریدن فرج کرد نام آندریده فرجی این لقب شد فاش زانمرد نجی این لقب شد فاش و صافش شیخ برد. ماند اندر طب خلقان حرف درد. همچنین هر نام صافی داشت است. اسم را چون دردی بگذاشت است. هر که گلخار است دردی را گرفت. رفت صوفی، سوی صافی ناشکفت گفت لابد درد را صافه بود زین دلالت دل به صفوت می رود درد عسر افتاد و صافش یسر او صاف چون خرما و دردی بسر او یسر با عسر است هین آیس مباش راه داری زین ممات اندر معاش روح خواهی جبه بشکاف ای پسر تا از آن صفوت براری زود سر هست صوفی آن آنکه شد صفوت طلب نز لباس صوف و خیاطی و دب صوفی گشت با پیشه این لام الخیات و لوات و سلام بر خیال آن صفا و نام نیک رنگ پوشیدن نکو باشد ولیک بر خیالش گروی تا اصل او نیچو اباد خیال تو دور باش غیرتت آمد خیال گرد بر گرد سراپرده جمال بسته هر جوینده را که راه نیست هر خیالش پیش می آید که بیست جز مگر آن تیز گوش تیز هوش، کش از جیش نصرت هاش جوش نجهت از تخیل ها نی شه شود، تیر شه بنماید آنگه ره شود. این دل سرگشت را تدبیر بخش، وین های دوتورا تیر بخش. جرعه بر ریختیزان جام، بر زمین خاک من کاسل هست بر زلف و رخ از جرعش نشان خاک را شاهان همه لیسند از آن جرعه حسن است اندر خاک کش که بسد دل روز و شب می بوسیش جرعه خاک چون مجنون کند مرتو را تا صاف او خودچون کند هر کس پیش کلوخ جامچاک کان کلوخ از حسن آمد جرعناک جرعه بر ماه و خورشید و حمل جرعه بر عرش و کرسی و زهل جرعه گوییش ای عجب یا کیمیا که ز آسیبش بود چندین به ها جد طلب او عیزو فنون لا یمس و زاک ایل المطهرون بر زر و بر لال و درر جرعه بر خمر و بر نقل و سمر جرعه بر روی خوبان لطاف تا چگونه باشد آن را واقع صاف چون همی مالی زبان را اندرین چون چوی چون بینی آن را بیزتین چون که وقت مرگ آن آنجرعی صفا زینکلوخ تن مردن شد جدا آنچه میماند کنی دفنش تو زود این چونین زشتی بدان چون گشته بود جان چوبی بی این جیفه بن مایت جمال من نتانم گفت لطفه آن وسال. سال مح چو بی این ابر بن مایت زیا شرح نتون کرد کار و کیا حب آن مطبخه پرنوش و قند کینسلاتین کاسلیسان ویند. حب آن خرمن صحرای دین که بود هر خرمنان را دانچین. حب دریای عمر بیغمی که بود زو هفت دریا شب نمی. جرعه چون ریخت ساقیه علاست بر سر این شورخاک زیر دست جوش کردان خاک و ما جوششیم جرعه دیگر که بس به گر روا بود ناله کردم از آدم ور نبود این گفتنی نک تن زدم این بیان بد هرس منسنیست از خلیل آموز کان بت کشتنیست هست در بد غیر این بس خیر و شر ترسم از فوت سخنهای دگر صفت تاووس و طبع او و سبب کشتن ابراهیم علیه السلام او را آمدی مکنون به تاووس درنگ. کو کوکند جلوه برای نام و ننگ همت او سید خلق از خیر و شر و از نتیجه و فایده بی بیخبر بی خبر چون دام میگیرد شکار. دام را چه علم از مقصود کار. دام را چه زر و چه نفع از گرفت. زین گرفت به هدش دارم شگفت. ای برادر دوستا نفراشتی. با دوست دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است، از وقت ولاد سید مردم کردن از دام وداد زان شکار و انبوهی و بادو بود دست درکن هیچ یابی تار و پود بیشتر رفته و بیگاه است روز تو به جد در سید خلقانی هنوز آن یکی می و آن میهل زدام و این دگر را سعید می کن چون لعام باز این را میهل و میجو دگر ایند لب کودکان بیخبر شب شود در دام تو یک سعید نه. دام بر تو جز صدا و قید نه. پس تو خود را سعید می کردی بدام که شدی محبوس و محرومی زکام در زمانه صاحب دامی بود همچما احمق که سید خود کند چون شکار خوک آمد سید آم رنج حد لقم خوردن و حرام آن که عرضت سعید را عشق است و بس. لیک او کی گنجدن در دام کس. تو مگر آیی و صید او شوی. دام بگذاری به دام او روی. اشق می گوید به گوشم پست پست. سعید بودن خوشتر از سیادی است. گول من کن خیش را و غره شو. آف آفتابی را رها کن، زره شو بردرم ساکن شو و بیخانه باش دعوی شمعی مکن، پروانه باش تا ببینی چاشنی زندگی سلطنت بینی، نهان در بندگی نالبینی باجگونه در جهان تخت را لقب گشته شهان بس در گلو و تاج دار بروی انبوهی که اینک تاج دار همچو گور کافران بیرون هلل اندرون قهر خدا عز وجل چون قبور آن را مجسس کردند، پرده پندار پیش آوردند، طبع مسکینت مجسس از هنر همچون نخل موم بی برگ و ثمر در بیان آنکه لطف حق را همکست داند، و قهر حق را همه کس داند، و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق دراویزان. اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در قهر پنهان کرد. گفت درویش به درویشی که تو چون بی دیدی حضرت حق را بگو گفت بی چون دیدم اما بهر قال بازگویم مختصر آن را مثال دیدمش سوی چپ او آزر سوی دست راست جوی کاوسار سوی چپش بس جهان سوز آتشه، سوی دست راستش جوی خشه سوی آن آتش گروه برده است، بحر آن کوسر گروه شاد و مست لیک لعب باجگونه بوده سخت، پیش پای هر شقی و نیک بخت هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت، از میان او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد واب زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال، وان که شد سوی شمال آتشین سر برون می کرد از سوی یمین کمکس بر سر این مزمر زده لاجرم کمکس در آن آتش شده جز کسی که بر سرش اقبال ریخت کوره ها کرد آب و در آتش گریخت کرده ذوق نقد را معبود خلق لاجرم زین لیب مغبون بود خلق جاق جاق و صف صف از هر و شتاب محترس زاتش گریزان سوی آب لاجرم زاتش برآوردند سر اعتبار ال اعتبار ای بی خبر بان می زد آتش ای گی جان گول من نیم آتش منم چشم قبول چشم بندی کردند ای بی نظر در من آیو هیچ مگریز از شرر ای خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سهر خود خودعه نمرود نیست. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آب توست تو پروانه ای. جان پروانه همی دارد ندا، که دریغا صد هزارم پر بدا، تا همی سوزید ذاتش بیامان. کوری چشم و دل نامهرمان بر من ارد رحم جاهل از خری من برو رحم آرم از بینشوری خواست این آتش که جان آب هاست کار پروانه به عکس کار ماست او ببیند نور و در نار روید دل ببیند نارو در نور شود این لب آمد از رب جلیل تا ببینی کیست از آل خلیل آتش را شکل آب دادند و در آتش چشمه بکشادند ساهره صحن برنج را فن صحن پرکر می کند در انجمن. خانه را او پر کشدم ها نمود، از دم سه را خودان کشدم نبود. چونکه که جادو می نماید ستچنین، چون بود دستان جادو آفرین، لاجرم از از یزدان قرن قرن اندر افتادند چون زن زیر پهن ساهرانشون بنده بودند و غلام اندر افتادند چون صعبه بدام هین بخوان قرآن ببین سهر حلال سرنگونی های کلجبال منیم فرعون کایم سوی نیل سوی آتش می روم من چون خلیل نیست آتش هست آن ماع معین وندگر از معکر آب آتشین پس نکو گفت آن رسول خوش جواز ذره اقلت به از سوم و نماز زانکه عقلت اقلت جوهر است این دو عرز این دو در تکمیل آن شد مفترز تا جلا باشد مران آینه را که صفا آید زتاعت سینه را لیک گر آینه از بن فاسده است سیقل را دیر باز آرد بده است وانگوزین آینه که خوش مغرسه است اندک سیقلگری آن را بس است